بزرگان توصیه می کنند که ما بیشید خودم را مرمو مصدر کنید سخنانی مولانا ناروی موضوع وصول زندگی ایمانی اجرا وزاب مرکز را برمو را می سرانید الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة ونسك ومحياي ومامتي لله رب العالمين صدق الله العظيم درو شریف بخوانید. اللهم صلّي على سيدنا وشرفنا وآل محمد با کسب اجازه از محضر اساتید و علمای کرام لحظاتی در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم و موضوع اصولی چند برای زندگی ایمانی دعا بکنید الله تعالی ما را توفیق بده زندگی ما زندگی ایمانی بشه در مسیر دین حرکت بکنیم از ما بپذیره و در هر لحظه ما را راهنمایی بکنه واقعیت این است که ما در این دنیا نیامدیم بلکه فرستاده شدیم الله تعالی ما را فرستاده تا یک امتحانی پس بدیم و بعد از این دنیا بریم بالا تعالی بعد هم ما را مورد بازخواست قرار خواهد داد چه کردیم در این دنیا چه برنامه هایی داشتیم چه زندگی گذراندیم همه این موارد را در روز قیامت باید پاسخگو باشیم بنابراین انسان های عاقل انسان های هوشمند فکر می کنند که چگونه زندگی بکنیم تا در روز قیامت بتونیم پاسخی درخور شایسته و ارزشمند داشته باشیم؟ الله تعالی به پیانبر گرامی صلی علیه و وسلم دستور میدهد تا ما را یادآوری بکند که همه برنامه های ما باید به خاطر الله باشه، برای الله باشد به پیانبر گرامی صلی عليه و وسلم دستور میدهد که قل ان سلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین ا پیامبر به مردم بگو تا بدانند بگو که من که پیامبر خدا هستم همه برنامه های من نماز من عبادت من زندگی من مرگ من باید در جهت رضای الله تعالی باشه یعنی من که اصوه شما هستم الگوی شما هستم بویژه در زمینه دینی باید تابع دستورات الله تعالی باشم در هر لحظه از زندگی نباید از الله تعالی دوری بکنم غافل باشم سعی و تلاش ما این باشه که هر کاری میکنیم در جهت رضای الله تعالی باشه و در جای دیگر فرموده الله تعالی ولا تموتون الا وانتم مسلمون شما با اسلام از این دنیا برید از اول تا آخر زندگی ما باید اسلام مد نظر ما باشه در این زمینه فکر بکنیم زندگی کردن مهم نیست چگونه زندگی کردن مهم هست وگرنه خیلی آن در این دنیا زندگی میکنن حیوانات هم در این دنیا زندگی دارند، درختان هم در این دنیا زندگی دارند. اما زندگی یک مسلمان باید با زندگی دیگر انسان‌ها فرق داشته باشه. زندگی یک انسان باید زندگی با زندگی حیوانات فرق داشته باشه. و این وقتی میشه که هدف زندگی را بشناسه چرا من در این دنیا آمدن؟ آمدنم بهر چی بوده؟ به تعبیر شاعر گرانقدر روزها فکر ملین است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دلی خیشتنم ز کجا آمده ام آمدنم بهر چی بود به کجا میرم آخر ننمایی وطنم مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی غفصی ساختند از بدنم وقتی ما به صورت موقت در این دنیا آمدیم و باید برگردیم به سراغ منزلگاه اصلی خودمون باید فکر بکنیم که آنجا میریم از ما سوال میشه اونجا الله تعالی از ما میپرسه در اولین لحظه‌های روز محشر انسان پرسیده میشه درباره این که زندگی را چگونه گذرانده این انسان حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله را می متا یجد العبد و طعم الراحه؟ یک انسان که طعم راحتی را می چشه می فرماید که اذا وضع قدمه فی الجنه دنیا جای راحتی نیست اگر ما دنیا در دنیا می تنها و تنها راحت باشیم زحمتی متحمل نشیم در راه دین مخصوصا ما ممکنه از کاروان ارزش ها اغب بیفتیم ممکنه به مقصد زندگی پی نبریم و از مسیر دور بیفتیم لذا ما باید در راه دین مجاهده بکنیم در راه دین فکر بکنیم در راه دین برنامه داشته باشیم حضرت علی رضی الله تعالی عنه مقوله داره می که ال ایام صحائف و اعمارکم فخل دوها صالح اعمالکم این روزهایی که دارند می اینها برگهای عمر شما هستند شما چه کار بکنید فخل دوها صالح اعمالکم شما بهترین اعمال را اعمالی که برای شما جاودانه میمانه در اینجا قرار بدید و این کارها را انجام بدید اینها را انجام بدید تا زندگی ارزشمندی داشته باشید بنابراین عزیزان زندگی هم اصول داره اگر ما می زندگی ایمانی داشته باشیم زندگی ما زندگی پربار و پربرکتی باشه زندگی باشه که رب العالمین از این زندگی راضی هست لزوماً باید به اصولی که در قرآن و سنت آمدند به اصولی که در کتابهای حدیث آمدن پایبند باشیم فکر بکنیم برای اینها وقت فارغ بکنیم تا اینکه زندگی ما ارزشمند بشه اولین مورد از اصولی که برای زندگی ایمانی ضرورت داره این است که ما به سوی اعمال بشتابیم الله تعالی به ما دستور میده پیامبر صلی علیه و وسلم دستور میده آرام نریم به سوی اعمال رب العالمین از ما میخواهد که به سرعت به طرف اعمال بریم افرادی که به سوی دنیا تند میرند اما به سوی نماز کند میرند به سوی کارهای خیر کند میرند اینها عقب مونده هستند اینها مسیر زندگی را اشتباه دارند میرند باید در راه دین ما تند بریم در قرآن عظیم مشن آیاتی که آمده درباره دین در باره اعمال رب العالمین میفرماید که بدوید شما ففروا الاله بسوی الله بدوید آرام آرام حرکت نکنید در جای دیگر میفرماید او الی مغفرته من ربکم میفرماید و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون باید رقابت بکنیم در راه دین در راه اعمال در راه ارزش‌های دینی خودمان باید ما رقابت داشته باشیم با هم دیگر و رسول اکرم صلی الله علیه و سلام می که بادرو بالاعمال بال فتن که قطع لیل المظلم شما بشتابید به اعمال قبل از اینکه شما را فرا بگیرند فتنه مانند تکه های شب سیاه راه حل داره برای ما بیان میکنه رسول گرامی صلی الله علیه و راهحل راه حل برای اینکه ما از فتنه ها نجات پیدا بکنیم امروزه های فراوانی وجود داره در دنیا در زندگی ها در شهرها در روستاها بیماری ها بیماری کرونا یک فتنه هست. اختلافات و مشکلات خانوادگی فتنه هستند بیماری های دیگری که در زندگی وجود دارند فتنه هست. کسب و کار راکت شده اینا همه هایی هستند و فراتر از اینها های بزرگتری وجود داره که ما نمیدانیم. مانند تکه های سیاه شب گاهی میاد که مردم گمان نمی کنند اما الله تعالی میاره گاهی اوقات در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می که اگر شما میخواهید نجات پیدا بکنید راه حل تنها و تنها این است که ارتباط خودتان را با رب العالمین مستحکم بکنید باد دی روبال اعمال بشتابید به طرف اعمال آرام نرید برای اعمال وقت فارغ بکنید. در سیره بزرگان وقتی ما دقت می عجیبه اینها رقابتشون در مال نبوده. در ساختمان سازی نبوده. در کارهای دنیا و برنامه های دنیا نبوده. اینها رقابتهایشون و فعالیتهایشون در راه اعمال بوده. میبینیم سالهای سال امام ابو هنیفه رحمه الله شبها را با عبادت میگذارانه گذارنه سالهای سال درباره امام شافی آمده که ماه مبارک رمزان فوق العاده قرآن از این مششن تلاوت میکرد درباره در باز هم امام ابو حنیفه آمده که هزاران بار قرآن عظیم این را ختم میکنه در اون منظری که در اونجا فوت میکنه کنه حدودا هفت هزار بار در جای من خواندم. اینها رقابت در اعمال بود برای اعمال تلاش می کردن می شتافتن به طرف اعمال با قرآن مجید اونس داشتن با دعاها اونس داشتن دستها را بالا می گرفتن و بالاخره فوق العاده دعا می کردن قرآن عزی را خیلی زیاد احتمام می کردن. چرا؟ چون قرآن عظیم شان کسی که به طور کامل به قرآن احتمام بکنه در زندگی برکت می بینه. کتاب انزل له مبارکون کتاب مبارکی هست از این مشان را خداوند متعال نور معرفی میکنه. در زندگی برکت میاد در زندگی نور میاد اگر انسان قرآن این مشان را اهتمام بکنه فعالیت های قرآنی را حمایت بکنه خودش قرآن بخوانه به قرآن عمل بکنه یاد بگیره قرآن را اینا همه سبب برکت در زندگی یک فرد میشن. لذا، برای اعمال ما هرچی بیشتر فعالیت بکنیم برای ما بهتر هست و راهحل این است عزیزان که ما با انسان اهل عمل همراه بشیم. انسان هایی که اهل عمل هستند اگر با آنها مرراه بشیم، اعمال ما خوب میشه. در مجالس خوب شرکت بکنیم اعمال ما تغییر میکنه. با انسان های نیک همراه بشیم، اعمال ما تغییر میکنه، بسیاری هستند، اعمال خوبی ندارند چرا که محیط خوبی ندارند اما اگر محیط خودشان را عوض بکنند یقینا اعمالشون عوض میشه و حضرت ابن عطاء اسکندری رحمه الله یکی از شخصیت های معنوی بوده ایشون می‌فرماید که لا تسحب ملا که حاله ولا یدلک على الله مقاله شما همراه نباشید با کسانی که حالت اونها شما را به حرکت در نمیاره آورد لا حالو یعنی حالتش را وقتی نگاه میکنید شوق دین در وجود شما نمیاد با او همراه نباشید و سخن شما را بیاد الله تعالی نمیاندازه با این نوع انسان ها هم شما همراه نباشید بنابراین اولین مورد برای اینکه زندگی ما یک زندگی ایمانی بشه برای اینکه زندگی ما ارزشمند بشه این است که ما به اعمال بشتابیم نکته دوم و اصل دوم برای خوشبختی در زندگی دنیا و آخرت این است که علما خیلی به این تأکید کردند ترک گناه است امروز متاسفانه با این فضای مجازی با بلاخره ابزارهای جدید مشکلات فراوان و گناهان فراوانی در زندگی یک مسلمان آمده که باید فکر بکنه که اگر گناهان را ترک نکنه یک انسان خودش را در دنیا و آخرت برباد میکنه هم در دنیا و هم در آخرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید اتقل محارم تكن اعبد الناس شما از حرام پرهیز بکنید شما عابدترین مردمان خواهید بود از همه مردمان آبتر خواهی بود فقط و فقط شما گناهان را ترک بکنید از حضرت مفتی رشید احمد لودیانوی من شنیدم یکی, اساتید یکی از اساتید میفرمود که ایشون گفته اگر انسان فقط به فرایز اکتفا بکنه و از طرف دیگر گناهان را به طور کامل ترک بکنه این شخص میشه یکی از اولیا الله فقط گناهان را ترک بکنه مشکل مسلمانان امروزی این است که از یک طرف اینها نماز میخوانند اما از طرف دیگر متأسفانه با گناهانی که مرتکب میشند گناهان چشم گناهان زبان گناهان گوش گناهان قلب با این نو گناهان اعمال خودشان را برباد میکنند و نتیجه نمیگیرند اینها و این گناهان سبب میشه که انسان از دید الله تعالی و از نگاه الله تعالی بیفته، بیارزش ارزش میشه برای خداوند متعال. یکی از بزرگان نکته بسیار جالبی فرمود که سقوط بزرگترین سقوط چیه؟ می‌فرماید بزرگترین سقوط این نیست که یک انسان از بالای سقف میافته یا از بالای کوه می‌افته، دست و پاش می‌شکنه یا درهل می‌میره. می‌فرماید که بزرگترین سقوط این انسان این است که یک انسان از نگاه الله تعالی بیفته این بزرگترین سقوطه چرا؟ چون کسی که از بالای سقف میفته در این دنیا زندگیش ممکنه تمام بشه ممکنه دست و پایش بشکنه اما کسی که از نگاه الله تعالی میفته در این دنیا و اون دنیا خودش را بدبخت و بیشاره کرده کسی که به برای گناهان پروانه داره مخصوصا حالات های خودش را انسان بررسی بکنه. بزرگان میفرمایند که انسان باید فکر بکنه که من در خلوت چه کارهایی دارم انجام میدم اعمال را بیشتر بکنه و تلاش بکنه که در خلوتها که کسی نمیبینه اما الله تعالی میبینه و نگهبانان رب العالمین میبینند انسان تلاش بکنه که اون وقت خودش را نگه داره در اون وقت بیاد الله تعالی باشه این انسان موفق میشه چرا که این گناهان دل را نابود میکنند با هر گناهی که انسان مرتکب میشه یک نکته سیاه بر قلب انسان میخوره مولانا جلال الدین رومی خیلی زیبا فرموده که هر گناه است بر مرآت دل دل شود زین زنگها خار و خجل چون زیادت گشت دل را تیرگی نفس دون را بیش گردد خیرگی هر اندازه یک انسان در گناهان فو بیشتر فرو میره بالاخره نفسش خیرهتر میشه بعد نه بر این انسان وعضع اثر میکنه نه دیدن حالات خطرناک بر این اثر میکنه نه سخن یک شیخ و بزرگ و عالم و مرشد بر او اثر میکنه هیچ چیزی بر او اثر نمیکنه چرا چون قلبش سنگ شده و خداوند متعال میفرماید که بعضی دلها مانند سنگ میشن با گناهان اینها مانند سنگ میشن. و اگر انسان برای ترک گناه فکر نکنه روز به روز بیشتر غرق میشه و این خودش را داره نابود میکنه یک مثال بسیار زیبایی مولانا جلال الدین رومی آورده در این باره میفرماید که یک فردی کیسه ای را پر از گندم میکرد در شب و صبح میآمد میدید که این بالاخره کیسه خالی شده شب بعد دوباره همین کار را تکرار میکرد. شب سوم دوباره همین کار را. میدید دوباره خالی شده. آخر نگاه کرد دید که از اون طرف یک موشی داره سوراخ بزرگی درست کرده از زیر داره اینها را میبره. من از بالا میریزم و این موش از پایین داره اینها را میبره. بعد مولانا جلال الدین رومی در قالب مثال میفرماید که یک شخصی آمد به این گفت که حاجی آقا اول ای جان دفع شر موش کن بعد از آن در جمع گندم کوش کن اول شر موش را از بین ببر موش را نابود بکن سوراخ را ببند بعد هر اندازه گندم جمع بکنی برای تو ذخیره میشه کم نمیشن ما امروز بلاخره گاه گاهی احساس میکنیم که اعمال ما اثر ندارن نماز ما ما را از گناهان نجات نمیده در زندگی ما برکت نمیاد اثر نمیاد ما در زندگی احساس شادمانی نمیکنیم. کنیم علتش همه برمیگرده عزیزان به گناهان موزل بزرگ ما این است که ما برای مغازه های خودمون چندتا قفل خیلی بزرگ و سخت و محکم میخریم تا کسی نیاد کالای دنیوی ما را نبره وقتی شب شب میشه ها را قفل میکنیم، اما ای را که به دل منتهی میشه ما محافظت نمی کنیم راحت هر چیز را که بالاخره برای ما خوشایند باشه نگاه می کنیم هر صدایی را که در ظاهر خوب باشه گوش می کنیم از راه قلب از راه زبان از راه چشم از راه گوش این قلب ما صدمه می بینه و داره نابود میشه داره نکته می خوره داره پریشان میشه داره سیاه میشه اما برای این محافظت کردن قلب خودمون برنامه نداریم خود ما را کنترل نمیکنیم وقتی کنترل نکنیم روز به روز نابودتر میشیم و از بین می ریم. قلب ما نابود میشه و از بین میره و ما نتیجه نمیگیریم و انسان هایی که می گن بعدها من توبه میکنم کنم و بعدها من بالاخره گناهان را ترک می کنم، اینها بالاخره این بلاخره فکر اشتباهی گرفتار شدند. مولانا الدین رومی می که مثالش مانند این است که یک نهال را شما هرچی زودتر اگر بخواهید بکنید کندنش برای شما خیلی راحت تر است. اما اگر همین نهال را شما بگذارید چند سال بعد بگید سال آینده، سال بعد تر چند سال بعد من این را بیرون می کنم آن وقت شما نمیتوانید این نهال گناه را از وجودتان پاک بکنید چرا که این نهال قوی تر میشه و شما روز به روز ضعیف تر میشید و از بین میرید یعنی قواي شما به تحلیل میره و شما مقاومت شما در برابر گناه کمتر میشه لذا هر چیزو تر انسان بالاخره خودش را بررسی بکنه و هر جایی که امکان داره از اونجا مرتکب گناه بشه از اون گناه را بگیره. من در جای خوندم که از مولانا تاریخ جمیل حفظه الله که سخنرانی هایش را خیلی از عزیزان شنیدند لذت بردند نکته های بسیار زیبایی بیان میکنه. از ایشون میپرسند که صحبت های شما خیلی تاثیر است شما چه کار می کنید؟ چه اعمال و چه مطالعاتی دارید؟ ایشون میفرماید توواوم میکنه میگه شما فکر می کنید اینجوری هست ولی من فکر نمی کنم که، بلاخره های من خیلی تحصیل گذار باشند اگر هم هستند من فکر می کنم از دو راه است یک من سعی می کنم چشمان خودم را از هر نوع گناهی محافظت بکنم و دو من سعی می کنم که به اسکار و اوراد به طور کامل پایبندی بکنم اسکار و اورادی که در حدیث آمده در صبح و شام در حالات خاص ذکر و دعا اومده می که من این دعاها را من احتمال می کنم لذا اگر هم شما تأثیری می بینید این به خاطر این دو مورد هست من احساس می کنم به خاطر این دو چیز است. لذا عزیزان یکی از اصول ایمانی ما این است که از محرمات دوری بکنیم و پرهیز بکنیم و هر جایی که شائبه حرام باشه از اونجا هم دوری بکنیم از شبهات گنا هم دوری بکنیم این انسان بالاخره انسان محبوب خداوند متعال میشه اما اگر برای شبهات پروانه کنه مرتکب حرام میشه اون طرفتر هم میره و بعد برای هر نوع گناه این انسان پروانه میکنه دلیل میاره برای خودش برای خودش بلاخره سازی میکنه تا بتونه به گناهان بلاخره بیشتر گناهان را انجام بده مورد سوم برای اینکه زندگی ما زندگی خوب و ایمانی بشه این است که ما توانمندیهای خودمان را ارتقا بدیم از یک مسلمان انتظار میره که در راه دین قوی باشه در راه علم قوی باشه در راه اخلاق قوی باشه در زمینه‌هایی که میتونه بالاخره خودش را قوی بکنه بره پیگیر بشه و این انسان بعد میشه یک مسلمان خوب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده که المؤمن القوی خیر و احب الله من المومن ضعیف مومنی که قوی باشه بهتر است و محبوبتر است بر الله تعالی نزد الله تعالی از مؤمن ضعیف مؤمن قوی کسی است که فکر میکنه که من در فلان زمین ضعف دارم قرآن بلد نیستم میره قرآن یاد میگیره احساس میکنه که من در فلان زمین مشکل دارم میره حاصل میکنه دنبال علم میره دنبال دانش میره و بالاخره در این زمینه قناعت نمیکنه قناعت در باب علم یک و دو قناعت در باب دین برابر با موت علم و موت دین هست بزرگان میفرمایند یعنی اگر ما به آنچه که داریم به آنچه که شنیدیم اکتفا بکنیم نه در مجالس دینی شرکت بکنیم نه کتاب مطالعه بکنیم نه پیگیر مسائل باشیم ما در واقع عقب افتادیم ما بالاخره خیلی از چیزها را نمیدونیم باید دنبالشون بریم. ما سن و نیازمندی داریم که اگر به این سن و نیازمندی ما فکر بکنیم اینها برطرف میشن اولین نیازمندی ما نیازمندی جسمی ما هست یعنی جسم را باید ما تقویت بکنیم که در این زمینه نیاز به توصیه وجود نداره همه مردم برای جسم دارن تلاش میکنند تنان خوبی بخورند غذای خوبی و لباس خوبی و مسکن خوبی داشته باشند البته باز هم ما توصیه میکنیم که در زمینه اینکه جسم ما سالم بمونه باز هم ما بیشتر دقت بکنیم مشوره بکنیم با طبیبان با پزشکان گاهی ورزش بکنیم که بزرگان توصیه میکنند یکی دیگر از نیازمندی هایی که خیلی ضروری است نیازمندی عقل ما هست این عقل اگر بالاخره با علم روشن نشه تاریک میشه وقتی تاریک بشه, بشه راههای درست را تشخیص نمیده کجا برم از چه راهی من برم به الله تعالی میرسم از چه راهی من میتونم مشکلات دنیایی خودم را حل بکنم مشکلات دینی خودم را حل بکنم، باید برای برطرف کردن تشنگی اغلی خودمون ما باید فکر بکنیم برای خودمون، برای فرزندان خودمون هم علم دینی را اهمیت بدیم، هم علم دولتی را اهمیت بدیم برای مدارس بالاخره فعالیت بکنیم، مدارس ما آباد بشن مکاتب ما آباد بشن در این زمینه هر اندازه که ما توان داریم خرج بکنیم، ما ضرر نمی کنیم. ملتی که علم نداره و سواد نداره، این ملت ملت اقب افتاده است. ملتی است که نمی دونه خیرش کجا هست و شرش چی هست و این ملت ممکنه به یک سمت و سوی بره که خودش را در چاله های نابودی بیاندازه. در مشکلات در پریشانی ها و این خانواده هایی هم که در اونها علم وجود نداره تنها مادیات انسان را از پریشانی ها نمیتونه نجات بده نیازمندی سوم ما نیازمندی روحی است ما تشنگی روحی داریم اگر یک فردی علم داره اگر یک فردی از لحاظ جسمی قوی هست مال داره همه نیازمندی های جسمی خودش را تامین میکنه اما از لحاظ روحی تشنه است این شخص هیچگاه احساس آرامش نمیکنه چرا که الله تعالی فرموده "الا به الله تتمئن القلوب هیچکنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست این انسان آرامش حاصل نمیکنه لذا اگر ما زندگی میکنیم زندگی ما باید برای بندگی باشه به تعبیر سعدی علی الرحمه. زندگی آمد برای بندگی. اگر ما زندگی می کنیم که به های نفس خودمان برسیم خوب بخوریم و بالاخره خوب استراحت بکنیم خوب تفریح بکنیم از اون طرف از اعمال و از معنویات در وجود ما چیزی نیست ما احساس آرامش نمی کنیم ما نمی خودمان را به خداوند متعال برسانیم و آن چیزهایی را که الله تعالی دستور داده ما از اونها روز روز دورتر میشیم لذا برای معنویت ما باید فکر بکنیم باید برنامه ریزی بکنیم و انسان اگر بخواهد همه مشکلاتش حل میشن در زمینه معنویت بالاخره ما مشوره بکنیم فکر بکنیم بریم سراغ انسانهایی که میتونند ما را مشوره های مفید بدند ما میتوانیم زندگی خودمان را دگرگون بکنیم انسانهایی که بلاخره فکر می کنند نتیجه می گیرند و انسان هایی که فکر نکنند ممکنه زندگیشان به همین صورت تمام بشه و خودشان هم متوجه نشند که چرا ما پریشانیم چرا در زندگی ما بلاخره آرامش وجود نداره پریشانی وجود داره اگر کسی توارمندی های خودش را ارتقا بده یقیناً از هر لحاظ رشد میکنه و از لحاظ سرعت و قدرت بالاتر از دیگران خواهد بود. نکته چهارم اصل چهارم برای زندگی ایمانی این است که ما زندگی خودمان را منظم بکنیم. بسیاری از زندگی ها نامنظم هستند. اما اسلام را وقتی ما نگاه میکنیم اسلام به ما تعلیم نظم میده. در صف نماز اسلام دستور میده پیامبر علیه و وسلم دستور میده که صفها را مرتب بگیرید جای خالی نگذارید و بالاخره اول بزرگان بالاخره صف میبندند بعد کودکان بعد بلاخره آخر صف زنهاست اینها در واقع تعلیم نظم برای ما هست نمازها را الله تعالی برای ما فرض کرده تا از یک طرف ارتباط با الله تعالی داشته باشیم و از طرف دیگر یاد بگیریم که منظم باشیم اگر میخوابیم یک وقتی حتما باید بیدار بشیم چرا که الله تعالی فرموده که حالا وقت نماز صبح هست حالا وقت نماز عصره حالا وقت فلان نماز هست بیرویه ما نخوابیم و بدون نظم زندگی نکنیم انسان هایی که نظم در زندگیشون حاکم نیست اینها در زندگی پریشان میشن و موفق نمیشند بعضی از کارشناسان مثالی در این باره دارند میگند که فردی که در زندگی نظم وجود داره مانند درخت پرثمری است که مردم دوست دارند از اون استفاده بکنند و فردی که منظم نیست برنامه هایش، مانند درخت خارداری است که هر کسی میخواد ازش دوری بکنه ما باده خاری به پایش بره یا به دستش اصابت بکنه یا به بدنش اصابت بکنه لذا ما برای نظم فکر بکنیم و هر روز برنامه های خود را چک بکنیم بررسی بکنیم یادداشت بکنیم تا کاری از کارهای ما نمانه برای نظم چند نکته من خدمت شما عرض بکنم یک اینکه که برنامه ریزی بکنیم و برنامه ریزی را مکتوب بکنیم چه کارهای امروز باید من انجام بدم اینها را ما یادداشت بکنیم و انسانهای موفق در دنیا کارهای روزانه خودشان را کوچک و بزرگ را همه را یادداشت می کنند تا فراموش نکنند تا به ترتیب اولویت بتونن به همه کارهای خودشون برسن دو برای برنامه هایی که ما داریم اونها را اجرایی بکنیم یادداشت بکنیم و اجرایی بکنیم و نکته دیگر این است که در راه اجرای ها استقامت بکنیم اگر ما استقامت نکنیم نمیتونیم نتیجه بگیریم بسیاری هستند که برنامه ریزی دارند اما ندارند به برنامه خودشون عمل بکنند اینها هم نتیجه نمیگیرند و بعد گاهی بزرگان توصیه میکنند که ما بنشینیم خودمان را محاسبه بکنیم در شب قبل از خواب ما در این روز چقدر کوتاهی کردیم در حق الله تعالی در حق مردم در حق خودمان چقدر از برنامه های مفیدی که ما داشتیم از اونها نتونستیم انجام بدیم و اونها باقی ماندن در این باره گاهگاهی انسان فکر بکنه و اگر انسان خودش خودش را محاسبه بکنه نیازی وجود نداره کسی دیگر را محاسبه بکنه. اما اگر فردی خودش خودش را محاسبه نمی کنه یقیناً های دیگر را محاسبه خواهند کرد. چرا که کارهای بی‌نظم کارها را خراب می‌کنه مشکلاتی برای خود و برای دیگران به بار میاره. مورد پنجم برای زندگی ایمانی من خلاصه می به پایان برسانم این است که برای زندگی ایمانی ما باید خیرخواه باشیم و راحت رسان باشیم خیرخواه انسان ها باشیم وجود ما برای دیگران خیر باشه راحت برسانیم به دیگران مثالی من خواندم یک شخصی در یک رودخانه میبینه که یک اغرب میره داخل آب افتاده میخواد بیرونش بکنه تا این رو میگیره عقرب میخواد نیشش بزنه دوباره اینا میینده داخل آب دوباره اینا میگیره دوباره میخواد نیشش بزنه بار سوم همین کار را میکنه میخواد اینو بیرون بیاره اما عقرب اینا نیش میزنه یک فردی اونجا کنارش نشسته بود نگاهش میکرد نظارهگرش بود گفت که حاجی آقا شما مگه نمیدونی که این حیوان خصلت حیوانیش تقاضا میکنه که تو نیش بزنه و این حیوانیت خودش را رها کنه این شخص جواب زیبایی میده میگه عجب وقتی یک حیوان خصلت حیوانی خودش را رها کنه چرا یک انسان گاهی اوقات خصلت انسانی خودش را رها میکنه بلا تشبیه حیوان میشه به هر جایی که میرسه ضربه وارد میکنه ضرر میرسانه چرا انسان ها این کار را میکنن واقعیت این است که بسیاری از انسان ها راحت رسان نیستند اینها مردم را به زحمت میاندازند با زبانشون با نگاهشون با برنامه هایشون با فعالیت های مخربانه خودشون میخوان به یکی ضربه وارد بکنند ممکنه که هیچ غرضی هم نداره اما متاسفانه حسودی و بالاخره مشکلات اخلاقی نمیگذاره او را و برای مردم مشکل درست میکنه لذا یکی از مواردی که انسان را انسان میکنه و بالاخره ایمان انسان را درست میکنه این است که این انسان برای دیگران سودمند باشه رسول اکرم صلی الله علیه و میفرماید که خیر و ناس من ینفع و الناس بهترین مردم کسی است که برای مردم نفع رسان هست. به مردم خیر میرسانه و برای مردم فعالیت میکنه و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باز هم فرموده دین و النصیحه حضرت عمر رضی الله و میفرماید: فرماید ملتی که در اون خیرخواهی وجود نداشته باشه خیر هم دیگر را نخواهند در اونها خیری وجود نداره اصلا لا خیر فی قوم لیسو بناسهین ولا خیر فی قوم لا يحبون الناسهین افرادی که خیرخواهان را دوست ندارند در اونها خیری وجود نداره و افرادی که خودشان هم خیر نیستند در اونها هم خیری وجود نداره. لذا ما در هر ای هستیم، در هر جایگاهی، در هر موقعیتی، سعی بکنیم که تا جایی که میتونیم برای مردم خیر رسان باشیم. راحت به مردم برسانیم، مردم را به زحمت نیاندازیم، مشکل درست نکنیم برای مردم. یک واقعیت این است عزیزان که بسیاری از مشکلات، این است که ما از مردم طلبگاریم میخواهیم حقوق ما را رعایت بکنند اما هیچگاه فکر نمی کنیم که ما هم حقوق مردم را رعایت بکنیم برای این ما فکر نمی کنیم برای این فکر میکنیم که فلانی حق من خورده فلانی درباره من صحبت کرده فلانی فلان کار را کرده اما گاهی خودمان را هم محاسبه بکنیم ما چه کار کردیم آیا درباره کسی حرف نزدیم آیا از زبان ما از اشاره ما، از فعالیت ما، کسی آزار ندیده، مشکلی به کسی نرسیده، اگر ما این فکر را بکنیم، مشکلات کم میشن ما درست حق را میتونیم بگیریم، اما شریعت به ما چی میفرماید؟ میفرماید که سل من قطع بر برعکس، کسی که با،, با تو قطع رحم میکنه، تو برو با حسل رحم بکن. و افو من ظلم شریعت به ما میگه که کسی که بر تو ظلم کرده او را معاف بکن. وگرنه انتقام گرفتن ممکن آسان باشه برای ها به حرف بد گفتن شایع پراکنی فحش دادن و بالاخره حرف‌های بد گفتن که کاری آسانی است اما شریعت به ما چیزی دیگه می‌فرماید به ما می‌فرماید که ولمن افا و لمن عفا واسلحه علی الله کسی که معاف می کنه و به دنبال صلح جویی هست اجر او بر الله تعالی است شریعت به ما میگه که تو میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز به خاطر این کاری انجام ندیم که حتما در همین دنیا نتیجه را باید ببینیم به یک فردی احترام میگذاریم تا به ما احترام بگذاره یکی را دعوت میکنیم تا ما را دعوت بکنه این که یک معامله هست ما داری معامله میکنیم و انسان مومن کارها را به خاطر الله میکنه و اگر کوچکترین کاری انجام میده به خاطر الله تعالی یقین بکنه که روز قیامت این کاری که انجام داده در نامه اعمالش نوشته شده و اونجا به دردش میخوره لذا در این زمین ما بیشتر باید فکر بکنیم یک مسلمان بر یک مسلمان دیگر چهار نو حق داره یکی حقوق قلبی هست یکی حقوق زبانی و دیگری حقوق مالی و حقوق بدنی من خیلی خلاصه این چهارت حق را توضیح میدم خدمت شما. اگر ما میخواهیم خیرخواه باشیم این موارد را دقت بکنیم. مسلمان بر مسلمان حقوق قلبی داره. چیند حقوق قلبی؟ مسلمان در برابر مسلمان باید حسن زن داشته باشه. همیشه نیت پاکی نسبت به مسلمانان داشته باشه. اگر... بالاخره این فرد نیت خودش را درست بکنه حسن زن داشته باشه به او سواب میرسه فرقی میکنه که اون طرف چه فکر میکنه مسلمان باید محبت بکنه با مسلمان دیگر حتی کسی که با او محبت نمیکنه این شخص با او محبت بکنه الله تعالی راضی میشه چرا چون این کار خودش را به خاطر الله تعالی انجام میده مسلمان باید سینه صافی نسبت به مسلمان دیگری داشته باشه اینا از سینه کسی خبردار نیست ما معامله ما با الله تعالی هست با مردم نیست اما وقتی با الله معامله میکنیم سینه را نسبت به مسلمانان صاف بکنیم یک صحابی را پیانبر گرامی صلی الله عليه وسلم به دیگران دیگر صحابه گفت که فلانی بهشتی است بعد یک صحابی میره با این چند روز میمانه بعد می پرسه که اعمال تو مثل اعمال من هستند فرق زیادی با هم نداریم چرا رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود شما بهشتی هستید درباره شما فرمود این صحابی فکر میکنه میگه من چیز دیگری ندارم ولی هر شب وقتی میخوابم بعد کسی در روز با من درگیر شده حرف بدی گفته به من حق من را خورده مشکلی برای من ایجاد کرده همه را من معاف میکنم شب میخوابم و صبح وقتی من بلند میشم با سینه صاف و سالمی با مردم مواجه میشم حرفای قبلی اصلا در ذهن من وجود ندارند و بعد این صحابی میفرماید یقینا همین مورد بوده که شما را بهشتی کرده ما در این دنیا فرصت اندکی زندگی می کنیم در اون آخرت برای همیشه ما اونجا زندگی می کنیم چرا آخرت جاودانه را برای چند روز دنیا ما بیاییم عوض بکنیم در این زمین ما فکر بکنیم نوع دوم حقوق زبانی هستند یک مسلمان بر مسلمان دیگر حقوق زبانی داره حقوق زبانی این است که سلام می ده علیک بکنه خودش سلام بده، شروع بکنه سلام دادن حتی منتظر نباشه کسی به من سلام بده و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گواهی داده الباده او سلام بری او من الکبر کسی که آغازگر سلام هست در وجود او کبر نیست و از کبر خالی است بعد کسی اتسه میزنه ما جوابش را بدیم یر و کلا بگیم جاهل چیزی نمیدونه بهش یاد بدیم اگر پیگیر هست اگر یک انسان خوبی هست بهش بالاخره تعریفش بکنیم البته اگر مستحق تعریف هست و الفاظ زیبایی براش به کار ببریم به عنوان مثال من میگم اگر یک فردی بلاخره ما میبینیم که یک موفقیتی به دست آورده تشویقش بکنیم و یک کلمه زیبایی بگیم تا این شخص خوشحال بشه و با خوشحالی از شما جدا بشه بعد امر معروف بکنیم و نهی از منکر بکنیم و این از وظیفه مسلمانان هست و اگر این کار را انجام ندند به وظیفه ایمانی خودشون عمل نکردند مخصوصا این نکته ما دقت بکنیم که الکلمات الجمیل مفتاح القلوب سخنان زیبایی که ما تحویل دیگران میدیم اینها کلیدهای قلب هستند بسیاری از مردم با اولین ملاقات شما یک عیبی را در شما گیر میارند میگن چرا این عیب را شما داری اما بسیار دیگر هستند که وقتی ملاقات بکنند با شما اول بالاخره یک زیبایی را در وجود شما میبینند و هر انسانی باشه زیبایی هایی داره اخ، یکی اخلاقش زیباست، یکی چهرهش زیباست، یکی لباسش زیباست بالاخره اینها را انسان تعریف بکنه، اون فرد خوشحال میشه و اگر کسی احساسات خوب داره اما نمیتونه ابراز بکنه باز هم ضعیف هست باید ابراز بکنه احساسات خودش را اگر میبینه که فرزند یکی شاگرد اول شده تشویقش بکنه تعریف و تمجیدش بکنه تا این فرزند خوشحال بشه و یکی از بخیلترین مردمان کسی است که نمی‌تونه چند کلمه زیبا به یک فرد موفق بگه و کلمات زیبا از زبان خودش بیرون بکنه این شخص بخیله نمیتونه اینار از زبان خودش در بکنه و بیرون بکنه و حقوق دیگر سوم حقوق یک مسلمان بر مسلمان دیگر حقوق مالی هستند صدقه بکنه بر مسلمان زکات بده گروسنهی را بینه سیرش بکنه نانش بده و اگر کسی را بینه لباس خوبی نداره برایش لباس تهیه بکنه مخصوصاً امروزه که مشکلات فراوان شدن تقاضای مسلمانی هست تقاضای برادری اسلامی هست که ما از دیگران خبرگیری بکنیم مردم متاسفانه تنها برای خودشان زندگی میکنند اما مسلمان مأمور است که تنها برای خودش زندگی نکنه برای دیگران هم فعالیت بکنه تلاش بکنه و اگر کسی برای دیگران فعالیت بکنه یقینا آرامش بیشتر در زندگی او میاد و احساس آرامش بیشتری میکنه اگر پولی را برای خودش خرج میکنه خوشحال میشه اما اگر همون پول را برای دیگران خرج بکنه گاهی اوقات بیشتر از اون خوشحال میشه که برای منزل خودش خرج بکنه و چهارم حقوق بدنی هستند و حقوق بدنی این است که افتاده ای را میبینیم دستش را بگیریم اگر کسی نیاز به کمکی داره باری داره بارش را برای او برداریم به هر صورتی که میتونیم بالاخره به انسانان و به برادران خودمون کمک بکنیم مورد ششم از صفات ایمانی که انسان ضرورت داره به این توجه بکنه این است که غم دین داشته باشه اگر کسی همه غمهای دنیا را داره اما غم دین نداره دین را بر دنیا ترجیح نمیده این انسان ناموفق است یکی از بزرگان نکته زیبایی داره میفرماید که <تصفح> حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ می فرماید الاسلام دین العزه و مهما ابتغينا العزه بغيره ادلنا الله اسلام دین عزت و هرگاه ما میخواهیم عزت را در جاهای دیگر جستجو بکنیم الله تعالی ما را ذلیل میکنه یعنی چه یعنی اگر ما دین را ترجیح ندیم برای دین غمخواری نداشته باشیم فکر نکنیم برای ما مدها ارزش داشته باشند برای ما تقلید غرب تقلید بازیگران تقلید فوتبالیست ها تقلید این افرادی که به نام هنرمند شناخته میشن محبت اینها در دل یک مسلمان باشه محبت حضرت ابوبکر صدیق نیست در قلبش محبت یاران صحاب... صلی اللہ صحابه پیامبر صلی الله علیه و صحابه کرام نیست در قلبش محبت خود حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در قلبش وجود نداره بلکه میخواد که دنیا را بر دین خودش ترجیح بده الله تعالی فرموده چینین انسانی خودش را حضرت عمر رضی الله عنه فرموده که این شخص ممکن است مورد غضب الله تعالی قرار بگیره و مسلمانان وقتی که از مسیر خودشون عبور بکنند دچار ذلت و مشکل میشن و امروزه متاسفانه این موزل خیلی فراوان وجود داره مردم برای دین وقت نمیدن مال نمیدن برای دین اهمیت نمیدن ما یک مقدار گاهی خودمان را بررسی بکنیم 24 ساعت زندگی خودمان را بررسی بکنیم چه قدر برای دین مصرف میشه و چه قدر برای دنیا مصرف میشه چه قدر ما چقدر با گوشی ها صحبت میکنیم یا مشغولیم با فضای مجازی چقدر با خواب میگذره چقدر با حرف های بیهوده و مجالس میگذره چقدر با خواب میگذره از اون طرف ما گاهی نگاه بکنیم چقدر میکنیم روزانه الله تعالی فرموده که اذكر الله ذکرا كثيرا ما چقدر ذکر می کنیم پروردگار ما از ما می که زیاد او را یاد بکنیم چقدر ذکر الله میشه در منزل ما ما خودمان که هستیم چقدر ما الله تعالی را ذکر می اگر ما اینها را مقایسه بکنیم میبینیم که امروز ما خیلی عقب هستیم باید ما به حال خودمون گاهگاهی گاهی غم بخوریم فکر بکنیم که مبادا روز قیامت جزو انهایی باشیم که الله تعالی ما را به حال خود ما واگزار میکنه در همین دنیا هم گاهگاهی تعالا تعالی انسانهای را به خودشون واگزار میکنه زندگیشون تنگ میشه چرا؟ چون دین را ترجیح نمیدن دنیا را ترجیح میدن و دنیا خاصیتش این نیست که آرامش بیاره اگر دنیا های دین باشه پریشانی به میاره الله تعالی فرموده و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا هر کس از ذکر من و از یاد من اعراض بکنه زندگی تنگی خواهد داشت و این زندگی هیچ وقت او را نمیتونه به بهشت برسانه اگر کسی غم دین داشته باشه یقینا راحتی بیشتر حاصل میکنه حضرت امام ابو حنیفه میفرماید که اگر می میدانستند ما چه لذتی داریم با دین خودمان و با این علم دین که حاصل می کنیم لجالدون علیه به سیوف با شمشیر می تا از ما این لذت را بگیرند اما نمی دانند اونا نمی دانند اصحاب دنیا نمی که این اهل دین در چه راحتی هستند و بالاخره در چه ناز و نعمتی هستند پیام دین این نیست که ما دین ما بلاخره خواسته های نفسانی را ترک بکنیم بلکه دین از ما می خواهد که خواسته های نفسانی را جهت دهی بکنیم اینها را تسهی بکنیم در همون مسیری که الله تعالی اجازه داده در همون مسیری که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم اجازه داده در اون مسیر ما حرکت بکنیم حضرت حارس محاسبی رحمه الله یکی از شیوخ بزرگ تصوف بوده می که هر انسان و هر عقلی که سه چیز را نداشته باشه این برباد شده اولین میفرماید که اون عقلی که این سه چیز را ترجیح نده شهو... شهوت ها بر او غلبه کرده اولین ایثار و طاعت علی المعصیح. اگر کسی طاعت را ترجیح نمیده به دنبال گناه است یعنی عقلش برابر نیست شهوت بر عقلش غلبه کرده اگر کسی علم را ترجیح نمیده بر جهل خودش راضی هست و نمیخواد چیزی حاصل بکنه میفرماید این عقلش مشکل داره شهوتها ای بر عقل این شخص انداختن و نمیخواد علم حاصل بکنه و اگر کسی دین را ترجیح نمیده فقط و فقط به دنبال دنیا هست باز هم این شخص بالاخره عقلش دچار مشکل شده و از مسیر منحرف شده یکی از دیگر از مواردی که لازم است برای زندگی ایمانیمون به اون فکر بکنیم تلاش و مجاهده در راه دین هست ببینید عزیزان اگر انسان تلاش نکنه، مجاهده نکنه حتی نماز هم نمیتونه بخوانه، ذکر هم نمیتونه بکنه حرکتی در راه دین نمیتونه انجام بده چرا؟ چون نفس نمیگذاره نفس انسان را به سوی سراسشیبی سقوط میبره اما دین میخواد که ما به سوی بلندای کمال بریم اگر انسانی میخواد که بر بالا یک کوه بره باید سختیات تحمل بکنه تا به غله برسه اما برعکس اگر از بالا یک سنگی را هم ما بذاریم در م... که بیفته تا پایین میره و با شتاب فراوان با سرعت فراوان میره به پایین دره میرسه نفس انسان تمایلش به سوی گناهان است میخواد که انسان بالاخره به خواهشات خودش برسه به خواسته های نفسانی به لذت ها به شهوت ها برسه لذا برای سقوط انسان را آماده میکنه اما الله تعالی میخواهد که ما بر اعمال استقامت بکنیم به سوی کمال حرکت بکنیم سختی تحمل بکنیم مجاهده بکنیم بعد نتیجه میگیریم افرادی که تهجد میخوانند باید مجاهده بکنند افرادی که نماز صبحشون هیچگاه قضا نمیشه اینها مجاهده میکنند وگرنه همه خواب را دوست دارند و این خواب نمیگذاره که انسان بالاخره به نماز خودش برسه چون که متاسفانه بسیاری مردم هستند وقتی میپرسی که چرا نماز نمیای میگه خواب میرم اصلا بیدار نمیشم و اینها همهش است لذا انسانهای اهل همت موفق میشند و انسانهایی که تنها آرزو میکنند مجاهده نمیکنند، تلاش نمیکنند اینها به نتیجه نخواهند رسید لذا ما در این مسیری که داریم میریم مسیر آخرت است، مسیر دین هست سعی بکنیم به این اصولی که الله تعالی برای ما مقرر کرده دین مقرر کرده پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم برای ما بیان فرموده عامل باشیم فکر بکنیم یقینا هم در این دنیا ما خوشبخت خواهیم شد و هم در آخرت الله تعالی به همه ما توفیق عمل بده و آخر الحمد لله رب العالمین